موسیقی قومی هفته جمادی 642 زندگی عذابی تمام نشدنی است. انگار همیشه بین زندگی و مرگ گیر کردم همیشه در برزخم این است مرز جزام آدم را زنده بگور می کند کوچه مادرها برای ترساندن بچه مرا با انگشت نشان میدهند. بچه های شیطان هم با سنگ میزنندند. مسخرم می کنند. کاسبها از جلو دکان‌هایشان با چوب میزنند و دورم میکنند نکند بد شگون باشند. زنهای حامله سرشان را برمیگردانند. انگار اگر چشمشان به ما بیفتد، بچه توی شکمشان ناقصال خلقه می شود. چیزی هست که هیچ کدام از این آدمها ها نفهمیدند. آنها برای این که چشمشان به ما جزامیها ها نیفتد، همه کاری میکنند. اما نمیدانند دانند که در اصل ما جزامیها هستیم که می از آنها و نگاه های و در داورشان دور باشیم جزام نوعی عذاب است هر روز یک بخش از بدن و روحت را می‌خورد. اول تن عوض می شود. رنگ پوست سیاه و کبود می شود. مثل چرم کلوفت می شود روی شانه ها و زانوها و دستها و صورت مدههایی به رنگ تخم مرغ گندیده در میآید. توی این مرحله همیشه احساس سوزش و خارش می کنی. بعد معلوم نیست چرا یک دفعه درد کمتر می شود و نوعی بیحسی به آدم دست می دهد. آن وقت قدده بزرگ می شود ورم می کند و به پینه های باد کرده تبدیل می شود بعد یواش یواش گوشتتن می ریزد و صورت چنان خراب می شود که دیگر نمی شود آن را بجا آورد. من توی این مرحله آخرم جوری شده که دیگر نمی توانم پلکایم را روی هم بگذارم. یعنی راستش پلکی برایم نمانده. چشمم بی خبر از من گریه می کنن. آب دهانم همینطور سرازیر است نمی توانم جمع جورش کنم شش تا از های دستم افتاده هفتمی در راه است اما عجیب اینکه موهایم هنوز سر جایش است لابد باید خودم را خوش اقبال به شمارم شنیده جزامیها را بیرون دیوارهای قلعه میاندازند های شهر را هم میبندند تا دوباره نتوانند داخل شوند اما در قونیه اینطور نیست اینجا یک زنگوله به خودمان میبندیم تا موقعی که این اینطوری اهالی را خبردار بکنیم میگذارند توی شهر بگردیم گدایی هم میگذارند بکنیم، اگر نمی که از گرسنگی تلف می شدیم. جزامی که باشی، دو راه برای زنده ماندن داری. اولی از دیگران گدایی کنی، دومی برای دیگران دعا کنی. هر دو راه هم شکم را سیر می کند. چرا مردم فکر میکنند؟ دعاهای ما جزامی ها مقبول تر است و خدا به ما انایت خاصی دارد چه حرف مفتی اگر آن طور باشد حال و روز ما این طور می شود؟ اما خب دیگر این طوری فکر حتی اگر حالشان هم از ما به هم بخورد حتما میخواهند برایشان دعا کنیم. ما جزامی ها را صدا میزنند تا برای مریضهایشان زمینگیرهایشان، پیرمردهایشان، پیرزنهایشان و گرفتاریهایشان دعا کنیم. در عوض پول میدهند شکممان را سیر می کنند، دست نوازش به سرمان میکشند. خوب میشد اگر این جماعت را درک میکردم. توی کوچه با جزامی ها مثل سگ رفتار می‌کنند اما همین که مریضی سخت می‌گیرند یا می‌ترسند که بمیرند دست به دامن دعاهای ما می‌شوند بین مردم صناری هم ارزش نداریم اما خانه‌هایی هست که آفت مرگ به آنها زده توی آن خانه‌ها پادشاه مایی هر وقت برای دعا کردن صدایم کنند سرم را به جلو خم می کنم صداهای بی معنی شبیه عربی از دهنم در می آورم و طوری رفتار می کنم که انگار در حال خشوع دارم زاری و التماس می کنم خب چه کار کنم چاره جز ادا درآوردن ندارم چون حتی باورم نمی شود که خدا حرفهای جزامی ها را بشنود. هیچ چیزی ندیدم که باعث بشود خلاف این فکر بکنم. با آنکه مداخلش کمتر است اما گدایی کردن را به دعا کردن پولی ترجیح می دهم. دست کم موقعی گدایی کسی را گول نمیزنم جمعه ها کارمان سکه است. تازه اگر ماه رمضان باشد که دیگر نور علانور نور است. ماه مبارک رمضان که از راه میرسد درآمد گداها شیرین بود، شیرین تر می می‌شوند. تازه آخرین روز رمضان را که نگو و نپرس. در آن روز همه گداهای شهر جیبشان را پر می‌کند. آن روز خسیسترین آدمها هم حتی آنهایی که توی جیبشان اغرب نگه می دارند برای صدقه دادن با هم دیگر رقابت می کنند. با این امید که هرچه گناه کرده اند بخشیده شود می خواهند تا ماه رمضان تمام نشده کار خیری کرده باشند برای همین گرسنانی یا پولی کف دستمان میگذارند. حتی اگر سه چهار قروش بیشتر نباشد یک بار در سال هم که شده جماعت از دست گداها فرار نمی کنند برعکس می روند توی کوچه ها و گوشه و کنار دنبال گدا می گردند. آن وقت گدایی که پیدا می کنند هرچه بدبخت تر و پریشان باشد، بیشتر خوشحال می شود. وجدانشان همانقدر آسوده می شود. برای اینکه نشان بدهند چقدر دست و دلباز و خیرند، برای یک روز هم که شده نفرت از ما را کنار می گذارند. راستش امروز هم به گمانم از روزهایی باشد که کار و کاسبی خوب است چون مولانا هم برای موعظه کردن و هم برای خود بخاندن بالای منبر می رود. مسجد خیلی وقت است پر شده کسانی که نتوانسته اند داخل شبستان جا پیدا کنند توی حیات به صف شدهاند. مولانا هر جا که وعظ بکند همه ی گداها و جیببرهای شهر هم مثل مگسهایی که به شیرینی حمله کنند آنجا جمع می‌شوند. همانطور که الان همهشان اینجا جمعند. درست مثل خودم حاضر و نازرم. به یک درخت افرا تکیه دادم و درست جلوی ورودی مسجد نشستم. بوی خاک باران خورده با رایهه ترش و شیرین دور دوردست در هم می آمیخت کشکولم را روی زمین جلوی پایم گذاشتم برعکس گداهای دیگر نال و زاری نمی کنم من حتی احتیاجی به حرف زدن نمی بینم کاسه گدائی را می گذارم جلوم و صبورانه منتظر می مانم اگر جزامی بودن یک جنبه خوب داشته باشد، لابد همین است. احتیاجی نیست نال وزاری کنی. التماس کنی و اشک بریزی و بگویی که چقدر بدبخت و ای یک بار که صورتم را باز کنم و نشان بدهم، انگار همه آن کارها را کردم. امروز هم همان کار را کردم. مدت زیادی نگذشته بود که چند سکه توی کاسه هم افتاد. اما همهش سکه های مسین بود. ای کاش یک سکه طلا هم بینشان بود فرقی نمی کند تقرایش خورشید شیر یا هلال باشد. از وقتی علاائیم که قبات قانون سکه های رایج را برانداخته سکه بیک های حلب دینار فاطمی سکه خلیفه بغداد حتی فلورین ایتالیا هم اینجا مثل سکه رایج دست به دست می شود خب مگر می شود حاکمان قونیه اینها را قبول بکنند و آن وقت گداها قبول نکنند همراه سکه ها چند برگ خشک هم توی بغلم افتاد درخت افرایی که زیرش نشسته بودم برگهای زرد تلائیش را میریخت هر بار که باد میوزید و دستهی برگ روی سر و لباسم میریخت با خود میگفتم شباهتهای زیادی به درخت افرا دارم درختی که پاییز برگهایش میریزد شبیه جزامی نیست که هر روز قسمتی از بدنش کم می شود من هم درختی لخت و اریانم پوستم اعزایم صورتم میپوسد و می ریزد هر روز بخشی از بدنم مرا ترک می کند اما برخلاف درخت که دوباره برگ می دهد من چیزهایی را که از دست دادم نمی توانم دوباره به دست آورم. رسیدن بهار و جوان زدن برای من در کار نیست. چیزی را که امروز از دست می دهم تا عبد از دست دادم. هر بار که یکی می خواهد سکی در کشگولم بیندازد این کار را سریع و دست انجام می دهد. انگار بخواهد فرار کند. موقع انداختن سکه سعی میکند چشمش به چشمم نیفتد چرا آدمها موقع پول دادن به صورت گداها نگاه نمیکنند انگار میترسند اگر توی چشممان نگاه کنند نحسی چیزی از ما به آنها سرایت کند توی جامعه ما از دوستها و سابقه دارها حتی از قاتل ها بدتری اگر کار آدم هایی را که دست به جنایت و دزدی می زنند تأیید هم نکنند لاعقل طوری رفتار نمی کنند که انگار آنها آدم های اما وقتی نوبت به من و آدم هایی مثل من می اصلا ما را نمی بینند وقتی به ما نگاه میکنند تنها چیزی که میبینند مرگ است و دوست ندارند باور کنند که مرگ ممکن است اینقدر نزدیک و اینقدر زشت باشد برای همین نگاهشان را از چشممان میدوستند برای همین است که حتی وقتی پیشمان میآیند و پول میدهند طوری رفتار میکنند انگار ما وجود نداریم. همانطور که نشسته بودم و توی این فکرها بودم، یک لحظه جایی آن پشتها ولوله برپا شد. شنیدم که یکی فریاد میزند. دارد می آید. دارد می آید. کسی که می آمد البته که مولوی بود. آن هم چه آمدنی. سوار اسبی بود سفید مثل شیر. روی قبای کهربایی رنگش برقه های و مروارید و مرجان کار شده بود. در حالی که پشت سرش مریدها و شیفتها و طرفدارهایش شلوغ می کردند، او خود سنگین و مقرورانه پیش می آمد. با آن همه جذبه و اعتماد به نفس و فراست که از سر رویش میبارید بیشتر به حاکمان شبیه بود تا عالمان دین سلطان باد و آتش و خاک و آب بود حتی اسبش هم گردنش را برافراشته بود انگار میدانست مردی که سوارش شده چقدر محترم است فلفور سکه های توی کشکولم را توی جیبم انداختم، سرپوشم را طوری بستم که نصف صورتم بیرون بماند، بعد رفتم داخل مسجد. آن تو چنان شلوغ و صفها چنان تنگ هم بود که نفس کشیدن هم سخت شده بود، چه برسد به اینکه که بخواهی جایی برای نشستن پیدا کنی؟ اما جزامی می بودن اگر یک جنبه خوب دیگر هم داشته باشد این است که حتی در شلوغترین مکانها هم براحتی می توانی جایی پیدا کنی. چون همه از تو فاصله می گیرند و کسی نمیخواهد خواهد کنارت بنشیند. برای همین توانستم در گوشی جایی برای خودم پیدا کنم و بنشینم. کمی بعد وعص شروع شد. مولوی گفت، ای جماعت. صدایش را گاه زیر می کرد، گاه بم. همگی من گهگاه، اسیر زن می شویم. حس می کنیم حقیریم و در تنگنای. در برابر کائنات بیکران نقطهی خوردیم. گوشت و پوستمان معلوم است مرزهای ادراک و اراده و عقلمان مشخص است بعضیها صرفاً این را میبینند و میپرسند در پیشگاه خدا چه معنایی دارد این جانفانی؟ من در این عالم بیکران چه ارزشی ممکن است داشته باشم میخواهم در موعظه امروزمان جواب این سؤال را بدهم. دو پسر مولوی در صف اول نشسته بودند. پسر بزرگش سلطان ولد که میگویند با مادر مرحومش مونه میزند و برادرش ادین که چهرهای باز و مژههایی بلند و چشمهایی بادامی و پیشانی بلند دارد، اما دور و برش را انگار بددینانه می پاین. هر دو هم قشنگ پیداست که به پدرشان افتخار می کنند. مولانا پس از لحظه سکوت چنین ادامه داد. پسران آدم، دختران هوا به چنان علمی شرفیاب شده اند که آن علم را نکوها می توانند دوش بکشند، و نه آسمانها از این روست که در قرآن میفرماید ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوها عرضه داشتیم از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند انسان آن امانت را بردوش گرفت پس انسان که به او چنین مقام و موقع ارزشمندی چون این پایه مهمی اعطا شده چرا باید در پی هدفی باشد که از آنچه خدا برایش در نظر گرفته پستر است؟ چرا خودش را پست کند؟ چرا حال که وزیر است خودش را رزیل کند؟ مولوی شمرده حرف میزد؟ مثل آدمهای دود چرا خورده؟ کلمههایش را انتخاب می کرد. روان و رسا حرف میزد. تشبیهی را که یک بار به کار برده بود به این آسانی ها تکرار نمیکرد. گفت که خدا روی تختی در آسمان هفتم نمینشیند، به تک تک ما نزدیک و با همه ما دوست است. گفت که درد و ناراحتی‌هایی که می کشیم ها و سختی هایی که با آنها رو در رو میشویم در اصل ما را به پروردگار نزدیک میکند. به دستهایمان توجه کنید انگشتهایمان مدام باز و بسته می میگیریم و رها می کنیم. رها میکنیم و میگیریم یک بار به درون بار دیگر به بیرون. بعد از آن که دستمان را مشت کردیم حکمن بازش میکنیم. وگرنه مثل افلیج ها میشوییم. هستیمان هم همینطور است. لحظه باز می شود لحظه بسته می شود. گاه دلمان می گیرد گاه باز می شود. این حالت ها که به نظر متضاد می رسند جوهره هستی است. به پرنده در حال پرواز نگاه کنید. به حرکت بالهایش توجه بفرمایید. یک بار به پایین، یک بار به بالا. یک غم، یک خوشی. این توریست زندگی، متوازن و موزون. اولش از چیزهایی که میشنیدم خوشم آمد. پس شادی و غم مثل بالهای پرنده به هم بسته و وابسته بوده. این را که شنیدم دلم خوش شد. اما همان موقع سوال دیگری ذهنم را خراشید. مولانا از محرومیت، از درد، از فقر. از بدبختی چه میداند پدرش که عالم با بوده پدرش و هفت جدش و خاندان معتبرش همیشه پشتش بودند توی ثروت و رفاه بزرگ شده سختی های روزگار را نکشیده فکر نکنم بجز مرگ همسر اولش کلابد خیلی باعث ناراحتیش شده درد دیگری در زندگی کشیده باشد از بچگی نازش را کشیدهاند بهترین عالمها در سشدادند همه دوستش داشتند. لوسش کردهاند احترامش را نگه داشتاند با چه جرعتی جلو جزامی مثل من از فضیلت های درد و ناراحتی حرف میزند هرس همه وجودم را گرفته بود، دهانم تلخ شده بود، دلم گرفته بود، فهمیده بودم چه اختلاف فاحشی بین من و مولوی هست. آخر این چه است؟ یا افراط یا تفریط، یا این سر یا آن سر؟ سهم من هم شده فقر و نیاز، گرسنگی، بدبختی و مصیبت. سهم مولوی هم رفاه، ارفان، سعادت، صحت و موفقیت. من صورتم را میپوشانم تا حال دیگران از دیدن ریخت و قیافم به هم نخورد. آن وقت او میرود آن وسط و مثل جواهری گران قیمت میدرخشد. کسی چه میداند اگر مولانا جای من بود چه کار میکرد چطور زندگی میکرد آن وقت میفهمید تحقیر شدن و حرف مفت شنیدن یعنی چه اگر زندگی که نصیب من شده نصیب او میشد باز هم میتوانست مولانا بشود با هر سوال جدیدی که به ذهنم می آمد حسادتم هم بیشتر میشد آخر سر خشمی که نسبت به مولانا حس می کردم بر شیفتگیم نسبت به او پیروز شد دیگر نتوانستم طاقت بیاورم از جایم پا شدم جماعت را با آرنجم کنار زدم و بیرون آمدم بعضی ها با اخم و تخب، بعضی ها هم با تعجب نگاه هم میکردند لابد با خود میگفتند این دیگر چه موجودی است همه دارند برای آمدن به مسجد سر و دست می شکنند آن وقت این بدبخت بیچاره دارد زور میزند که از مسجد بیرون برود